مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و و حکایت تعلق موش با چغز و بستن پای هر دو برشته دراز و برکشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلق با غیر جنس و با جنس خود ناساختن، از قضا موشی و چغز با وفا بر لب جو گشته بودند آشنا هر دو تن مربوط میقاتی شدند هر سباهی گوشه می آمدند نرده دل با همدگر می باختند از وساوث سینه می پرداختند هر دو را دل از طلاقی متسع همدگر را قصخان و مستمع رازگویان با زبان و بی زبان الجماعه رحمه را تعویل دان آن عشر چون جفت آن شاد آمده پنج سال قصهش یاد آمده جوش نطق از دل نشانه دوستی است بستگی نطق از بی است دل که دل بردید کی ماند ترش گلدید کیماند ماند خمش ماهی بریان ز آسیب خزر زنده شد در برگشت و مستقر یار را با یار چون بنشسته شد صد هزاران لوح سر دانسته شد لوح محفوظ است پیشانی یار راز کونینش نماید آشکار حادی راه است یار اندر قدوم مصطفی زین گفت اصحابی نجوم نجمن در ریگ و دریا رهنماست چشم من در نجم نه کو مقتداست. است چشم را با روی او میدار جفت. گرد من گیزان ز راه بحث و گفت زان گردد نجم پنهان زان غبار چشم بهتر از زبان با اسار تا بگوید او که وحی شعار کان نشاند گرد و ننگیزد غبار. چون شد آدم مظهر وحی و وداد، ناطق او علم الاسما گشاد. نام هر چیز چنان که هست آن، از صحیف دل روی گشتش زبان. فاش می گفتی زبان از رؤیتش، جمله را خاصیت و ماهیتش. آنچنان نامی که اشیا را سزد، نه چنان که حیز را خاند اسد. نه، نهصد سال در راه سبی بود هر روزش تذکیر نوی لعله او گویاز یا قوت القلوب نه رساله خانده نه قتل قلوب و از را ناموخته هیچ از شروح بلکه یبعه کشوف و شرح روح زانم کانمی چون نوشیده شود، آب نطق از گنگ جوشیده شود. طفل نوزاده شود حبر فسهه، حکمت بالغ بخاند چون از کهی که یافت زانمی خوشلبی صد غزل آمخت داوود نبی جمله مرغان ترک کرده چیک چیک همزبان و یار داوود ملیک چه عجب گرمرغ گردد مست او و داهن ندای دست او سرسر بر آد شده مر را چو همالی هم شده سرسر می برد بر سر تخت شاه هر سباه و هر مسا یک ماه راه هم شده هممال و هم جاسوس او گفت غایب را کنان محسوس او باد دم که گفت غایب یافتی سوی گوش آن ملک بشتافتی که فلانی این چونین گفت این زمان ای سلیمان مه صاحب قران. تدبیر کردن موش به چخص که من نمی توانم بر تو آمدن به وقت حاجت در آب. میان ما وصلت باید که چون من بر لب جو آیم تو را توانم خبر کردن و تو چون بر سر سراخ موشخانه مرا توانی خبر کردن. این سخن پایان ندارد گفت موش چغز را روزی که ایمس باه هوش. وقتها خواهم که گویم با تو راز تو درون آب داری ترک تاز بر لب جو من تو را نره زنان نشنوی در آب نال عاشقان من بدین وقت معین ای دلیر می نگردم از مهاکات تو سیر پنج وقت آمد نماز و رهنمون آشقان را فی صلات دائمون نه به پنج آرام گیرد آن خمار که در آن سرهاست نی پانست هزار نیست زرق بن وظیفه آشقان سخت مستسقیست جان صادقان نیست زرغبن وظیفه ماهیان زان که بی دریا ندارند انسجان آب این دریا که حایل بقعه است با خمار ماهیان خود جرعه است یکدم هجران بر عاشق چو سال، وصل سال متصل، پیشش خیال، عشق مستسقی است و مستسقی طلب، در پای هم این و آن چون روز و شب، روز بر شب آشق است و مزتر است، چون ببینی شب بر برو تر است، نیست از جستجو یک لحظه ایست از پی هم شان یکیدم ایست نیست این گرفته پای آن آن گوش این این بران مدحوش و آن بیهوش این در دل معشوق جمله عآشق است در دل ازرا همیشه وامق است در دل آشق جز معشوق نیست در میانشان فارق و فاروق نیست بر یکی اشتر بود این دو درا پس چه زرق بن بگنجد این دو را هیچ کس با خیش. زرق بن نمود هیچ کس با خود به نوبت یار بود آن یکی نه که عقلش فهم کرد فهم این موقوف شد بر مرگ مرد ور به عقل ادراک این ممکن بودی قهر نفس از بحر چه واجب شدی با چنان رحمت که دارد شاه هوش بی ضرورت چون بگوید نفس کش مبالغه کردن موش در لابه و زاری و وصلت جستن از چغز آبی گفت که یار عزیز مهرکار من ندارم بیروخت یکدم قرار روز نور و مکسب و تابم توی شب قرار و سلوت و خوابم توی از مروت باشد در شادم کنی وقت و بی وقت از کرم یادم کنی در شبان روز وظیفه چاشتگاه، راتبه کردی و سال اینک خواه. من بدین یک بار قانع نیستم، در هوایت انسانی انسانیستم. پانصد استسقاستم اندر جگر، با هر استسقا قرین جو البقر. به نیازی از غم من ای امیر ده زکات جاه و بنگر در فقیر این فقیر به عدب نادرخور است لیک لطف عام تو زان برتر است می نجوید لطف عام تو سند آفتاب بر حدس ها می زند نور او را زان زیان نابده و وان حدث از خشکی هیزم شده تا حدث در گلخنی شد نور یافت در در و دیوار حمام بتافت بود آلایش شد آرایش کنون چون بر او برخاند خورشید آن شمس هم میده زمین را گرم کرد تا زمین باقی حدس ها را بخورد. جزب خاک گشت و رست از وی نباد. حاک ازا یمحل الاله سیعات. با حدس که بدترین است این کند. کشنبات و نرگس و نسرین کند. تا به نسرین مناسک در وفا حق چه بخشد در جذاب و در عطا. چون خبیسان را چونین خلعت دهد، طیبین را تا چه بخشد در رسد. آن دهد حقشان که لا اینون رعت که نگنجد در زبان و در لغت، ما کیم این را، بیا ای یار من، روز من روشن کن از خلق حسن. من گرن در زشتی و مکروهیم، که ز پرزهری چمار کوهیم. ای که من زشت و خسالم جمله زشت، چون شوم گل، چون مرا او خار کشت. نوبهار حسن گلده خار را زینت تاووس ده این مار را در کمال زشتیم من منتها لطف تو در فضل و در فن منتها حاجت این منتها زن منتهی تو برار ای حسرت سروه سهی، چون بمیرم فضل تو خواهد گریست، از کرم گرچز حاجت او بریست، بر سر گورم بس خواهد نشست، خواهد از چشم لطیفش اشک جست، نوحه خواهد کرد بر محرومیم، چشم خواهد بست، از مظلومیم، اندک زان لطف ها اکنون بکن، حلقه درگوش من کن زان سخون، آن که خواهی گفت تو با خاک من، برفشان بر مدرک غمناک من، لابه کردن موش مرچغز را که بهانه اندیش و در نسیه مینداز انجاه این حاجت مرا که فت تأخیر و سوفیو ابن الوقتی و ابن دست از دامن پدر باز ندارد و اب مشفق صوفی که وقت است او را به نگرش به فردا محتاج نگرداند چندانش مستغرق دارد در گلزار سری الحسابی خویش نه چون عوام منتظر مستقبل نباشد نهری باشد نه دهری که لا سباه عند الله و لا مساعه موزی و مستقبل و ازل و ابد آنجا نباشد. آدم سابق و دجال مسبوق نباشد. که این رسوم در خطه عقل جزویست و روح حیوانی، در عالم لامکان و لازمان این رسوم نباشد. پس او، ابن وقت است که لا یفهمو منه، الا نفیو تفرقه از منته، چونانکه از الله و فهم شود نفی دویی، نه حقیقت باهدي. صوفی را گفت خاجه سیم پاش، ای قدمهای های تو را جانم فراش. یک درم خواهی تو امروز ای شهم یا که فردا چاشتگاهی سه درم. گفت دی نیمه درم راضیترم ترم، زان که امروز اینو فردا صد درم. سیلی نقد از عطای نسیه به، نک قفا پیشت کشیدم نقد ده، خواست آن سیلی که از دست تو است، که قفا و سیلیش مست تو است، هین بیا ای جان جان و سد جهان خوش غنیمت دار نقد این زمان، در مدوزد آن روی مه از شبروان سرمکش زین جوی ای آب روان تا جو خندد از آب معین لب جو سر برارد یاسمین چون ببینی بر لب جو سبزه ماست پس بدان از دور کانجا آب هست. گفت سیما هم وجوهن کردگار که بود غماز باران سبززار. گربه ببارد شب نبیند هیچ کس که بود در خواب هر نفس و نفس. تازگی هر گلستان جمیل، هست بر باران پنهانی دلیل. ای اخی، من خاکیم، تو آبی، لیک شاه رحمت و وهابی آنچنان کن از عطاب و از قسم، که گه و بگه به خدمت میرسم، بر لب جو من به جان میخواند می نبینم از اجابت مرحمت. آمدن در آب بر من بسته شد زن که ترکیبم ز رسته شد یا رسول یا نشان کن مدد تا تو را از بانگ من آگاه کند بحث کردند اندر این کار آن دو یار آخر آن بحث آن آمد قرار که بدست آرند یک رشته دراز تازه جذب رشته گردد کشف راز یکسره بر پای این بنده دو تو بست باید دیگرش بر پای تو تا به هم آییم زینفن مادوتن، اندرآمیزیم تن، اندر آمیزیم چون جان با بدن. هست تن چون ریسمان بر پای جان، میکشاند بر زمینش زاسمان. چغز جان در آب خواب بیهوشی رسته از موش تن آید در خوشی، موشتن زانریسمان بازش کشد چند تلخی زینکشش جان می چشد. گر نبودی جذب موش گنده مغز عیشها کردی درون آب چغز باقیش چون روز برخی زیز خواب بشنوی از نور بخش آفتاب یک رشته گریه بر پای من زن سر دیگر تو پا بر عقده زن تا توانم من در این خشکی کشید مرتو تو را نکشد سر رشته پدید تلخ آمد بر دل چغز این حدیث که مرا در عقده آرد این خبیس هر کراحت در دل مرد بهی چون درآید از فن نبود تهی وصف حق آن فراست را نوهم نور دل از لوح کل کرده است فهم امتناع پیل از سیران به با جد آن پیلبانو، بانو بانگ هیت جانب کعبه نرفتی پای پیل با همه نه کسی رو نه قلیل گفتی خود خوشک شد پاهای او یا بمرد آن جان سال افزای او چونکه کردندی سرش سوی یمن پیل نر صد از بگشتی گامزن حس پیل از زخم غیب آگاه بود چون بود حس ولی باورود نه که یقوب نبی آن پاک خو بحری یوسف با همه اخوان او از پدر چون خواستندش دادران تا برندش سوی صحرا، یک زمان جمله گفتندش میندیش از ضرر یک دو روزش دی ای پدر که چرا ما را نمیداری امین یوسف خود را به سیران و زعین تا به هم در ها بازی کنیم ما در این دعوت امین و محسنیم گفت این دانم که نقلش از برم می فروزد در دلم درد و سقم این دلم هرگز نمیگوید دروغ که زنور عارش دارد دل فروغ آن دلیل قاطع بود بر فساد واز قضا آن را نکرد او اعتداد در گذشت از وی نشانی آنچنان که قضا در فلسفه بود آن زمان. این عجب نبود که کور افتد بچه. بلعجب افتادن بینای راه. این قضا را گونگون تصریف هاست. چشم بندش یفعل الله مایشاست هم بداند هم نداند دل فنش موم گردد بحر آن مهر آهنش گویییا دل گویده که میل او چون در این شد هرچی افتد باش گو خیش را زین هم مغفل می کند در اقالش جان معقل می کند گر شود مات اندرین آن بلعلا آن نباشد مات باشد ابتلا یک بلا از صد بلایش باخرد یک حبوتش بر معارج ها برد خام شوخی که رهانی دشمدام از خمار صد هزاران زشت خام عاقبت او پخته و استاد شد جست از رق جهان وازاد شد، از شراب لایزالی گشت مست شد ممیز از خلایق باز رست، اعتقاد سست پرتقلیدشان وز خیال دیده بیدیدشان ای عجب چه فنزند ادراکشان پیش جزر و مد بحر بینشان زنبیابان این امارت ها رسید ملک و شاهی و بزارت ها رسید بیابان آدم مشتاق شاق میرسند اندر شهادت جاق جاق. کاروان بر کاروان زینبادیه میرسد در هر مساو و قادیه. آید و گیرد به ساق ما گرو که رسیدم نوبت ما شد، تو رو چون پسر چشم خرد را برگشاد زود بابا رخت برگردون نهاد جاده شاه است آن زینسو روان وان از آنسو صادران و واردان نیک بنگر ما نشسته می رویم. می نبینی قاصد جای نویم بحر حال می نگیری رأس مال بلکه از بحر غرزها در معال پس مسافر این بود ای ره پرست که مسیر و روش در مستقبل است همچنان که از پرده دل بیکلال دم بدم در می رسد خیل خیال گر نه تصویرات از یک مغرسند در پای هم سوی دل چون می رسند.